بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله في الارزین اللهم انت السلام و منک السلام ولك السلام و الیک يعود السلام سبحان ربك رب العزت اما يسفون و والسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین السلام علیکه ایوها النبی و رحمت الله و برکاته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 السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الحادي السلام على الحسن ابن علي الزكي الاسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم المحدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل وبالنهار ولا جعل الله اخر لحظه مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام انا ادعوكم اله کتاب الله و سنت نبیه فا این قد امیتد و قد احید فإن انتسمه و قولی و تطیع و امری اهدکم اله سبیل رشاد ارز کردم بحث امسال ما تبیین امام حسین علیه السلام در رابطه با موانع تحقق هدف انبیاء اگر ما معتقدیم انبیاء که از طرف خدا مبعوث شدهاند قطعاً هدفی را دنبال می‌کردند و این هدف علالقائده باید تحقق بیابد در عالم خارج خودش رو نشون بده پس این سوال مطرح می شود ابتدا که هدف انبیا چه بوده است و آیا اون ایکس را که ما به عنوان هدف انبیا میپذیریم تحقق یافت یا نه اگر تحقق نیافته چه موانعی وجود داشته و چی باعث شده کتاب کنون تحقق نیابد و ما به عنوان هیروان مکتب وحی و معتقدین به راه انبیان آیا می توانیم در زدودن این موانع نقشی داشته باشیم؟ رسالتی به عهده ما هست یا نه؟ به ویژه در رابطه با آشورای حسینی و واقعه محرم و کربلا چه روشنگری در این رابطه صورت گرفته و ما که خود را از شیعیان ابی عبدالله میدانیم از این روشنگری و تبیین چه می آموزیم و بر مبنای آنچه که می آموزیم چه باید بکنیم ارز کردم نسبت به وحی در مرحله اول دو نظر کاملا معارض و متفاوت وجود دارد یک نظری که وحی را رد کنید نبوت را قبول نکنید دین خدا معنویت حقایق ما برای ماده اینها خیالاتی بیش نیست و اینها مسائل اساطیری است خودتون رو معطل این حرفها منمایید اینا یه دسته دسته دیگر با ادله قوی و متغن چه از طریق مباحث کلامی چه فلسفی چه شهود عرفانی چه عدله دروندینی چه بروندینی اثبات میکنن ما به وحی نیازمندیم ما به نبوت محتاجیم خدا برای هدایت و راهنمایی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی ما پیامبران را مأمور کرده و به اونها هم دستور داده در این راه ولو لازم شد جانشون رو بدن بدن ولو لازم شد زندان برن تبعید بشن تحمتها بشنون، ازیت و آزارها ببینن خسته نشوند و لذا دستور داده شد فستقم کما امرد استقامت کنید بیستید خسته نشوید همچنان که شما معموریت دارید و پیغمبر اسلام به عنوان آخرین اونها در رابطه با این رنجها و ازیتها تصریح فرموده ان ما اوزی نبیان به مثل ما اوزید هیچ پیغمبری به اندازه ای که من عذیت شدم عذیت نشده است یعنی ما عذیتها را تحمل می کنیم زحمات را به جان می خریم تا اون رسالت من را عملی کنیم خب این دسته دوم بود اما بحث در اینجا بود اگر ما قبول کردیم که به نبوت نیازمندیم و وحی را میخواهیم اولین قدم این است که بفهمیم هدف انبیا چه بوده است که ما دنبال تحقق چه امری هستیم سه نظریه در طول تاریخ تفکر غائلین و معتقدین به وحی وجود داشته امروزم وجود داره و در طول تاریخ اینا خیلی سخنه ها گفتن حرف زدن در عصر ما بنابه جهتی که انشاالله با هم پیش رفتیم روشنتر خواهد شد که چرا لازم ما ختمان این بحثو در این زمانه جدیتر پی بگیریم خب این سه نظریه دو نظریه رو عرض کردم افراطی و تفریتی یک نظریه رو عرض کردم اعتدالی ای که میگوید گوید وحی خوب است اما فقط برای مسائل شخصی فردی جزئی رابطه بین من و خدا بیش از این از وحی انتظار نداشته باش نظریه دومی که نه وحی حتی به جای شما فکر هم کرده است شما دیگه فکر هم نکن وحی به جای شما بررسی امور نموده شما دیگه عقل دم دخالت نده یک برخورد سطحی قشری بسیار بسیار کودکانه در رابطه با وحی اینم یک نظره، نظر سوم چه میگوید؟ میگوید خداوند وحی را فرستاد، را مأمور کرد، خوراک لازم برای جمیع شعون زندگی فردی و اجتماعی شما را از طریق وحی برای شما معین کرد اما این شمایید که باید از این خوراک استفاده کنید. این شمایید که باید برای مندی از وحی اون مسئولیت و معموریتی که به اقتضای توان انسانی خدا به شما داده با بهی رابطه داشته باشید خب ما نخستین گام، اگر بین این سه نظر اولی درست باشه ما دو و سوم رو بگیریم پس در تحقق هدف انبیا مشکل اصلیمون شناخت غلطه همچنین دومی و سومی اولین قدم شناخت درست معرفت به جا اطلاع آگاهانه عمیق نسبت به هدف وحی است و مکتب وحی من اگر ندانم وحی هدفش ایکسه دنبال ایگرگ باشم اگر ندانم وحی هدفش ایگرگه دنبال ایکس باشم خب تحقو نمییابه یابه این ره که تو می به ترکستان است ترسم نرسی به کعبه اعرابی اول بشناس، بعد ببین اون حقیقتی را که شناختهی راه رسیدن به اون حقیقت چگونه است یک مثال خیلی ساده برای روشنگری بیشتر و بهتر این مطلب اگر بنده امروز از در منزل خارج شدم توی کوچه ایستادم. شما به بنده بر بخورید کجا میخوای بری؟ نمیدانم چی میخوای؟ نمیدانم. امروز میخوای چه کار کنی؟ نمیدانم. آیا برای چنین فردی که هدفی مشخص نکرده، چیزی نمیدانه، انتخاب درستی نکرده، حرکت معنا پیدا میکند و اگر بخواد حرکت کند، حرکت در جهت چه مقصد و هدف و انتخابی و چه گزینشی، این که معنا پیدا نمیکنه. اولین خدمتی که شما قراره به یک همچو فردی بکنید بهش بفهمانید اینگونه ایستادن و هدف نداشتن و انگیزه ای برای حرکت معین نکردن عمر زایع کردن است بدان که چه باید بخواهی تا بفهمی چگونه باید به با آنچه که باید بخواهی برسی پس اول بدان که چه باید بخواهی همینجا در رابطه با مکتب وحیم کاملا این مطلب مطرحه اول بدانیم وحی میخواهد چه در این عالم ایجاد کند و انبیا برای چی معمور شدن حالا اگر فرض کنید همین بنده ای که توی این کوچه ایستادم فهمیدم چی باید بخوام مثلا میگم خواسته من این است که بیایم حسینیه ارشاد خب حالا چی شد که نیامدم چه موانعی ای سر راه من قرار گرفت که به اون خواسته ای که داشتم نرسیدم این مرحله دومه حکما فلاسفه یه قاعده عقلی فلسفی روشنی دارن که تقریبا بدی است تحت عنوان قاعده فرعیه میگن ثبوت شیئا لشیئن فرع و مثبت له اگر شما بخواید آرا را برای به اثبات کنید اول باید ب داشته باشید تا آ را برای به اثبات کنید اگر میخواید رنگی به این دیوار بزنید اول با دیواری داشته باشید تا بعد رنگ رو به این دیوار اضافه کنید اگر ثبوت و شیئن لشیئن میخواید یک چیزی را برای یک چیزی ثابت کنید فر و ثبوت مثبت له اون مثبت له شما باید اول باشه تا این فر برو بار بشه ما وقتی میخواییم بگیم هدف انبیاء باید تحقق بیاید نوبت اول سر اینکه هدف انبیا چی ما دعوا داریم پس نوبت به تحقق نمیرسه بنده میگم هدف ایکسه شما میفرمایید هدف ایگره. بنده میگم هدف آهه شما میفرمایید هدف به اول اینجا با دعوامون حل کنیم تا بعد دوتایی دست به دست هم بدیم در تحقق هدف انبیا. ما از صدر اسلام این مشکل رو داشتیم البته این رو تو پرانتزم بگم خسته نشید بگید عجب! اگر یه دعوا غرنها طول کشیده است پس ما چه می‌کنیم اگر یک حقیقتی داشته باشیم و باطلی غرنها عوامل باطل برای پنهان کردن حق اعمال قدرت کنن اهل حق باید خسته بشن یا بگن ما تلاشمون رو می‌کنیم تا ببینیم در این دوبرخورده حق و باطل زمینه معرفت حق برای حق جویان فراهم شود اتمام حجت گردد و نظام الهیم اینه اگر هزاران سال طولم بکشد تا بر مبنای سنت الهی حرکت درست انجام ندیم نتیجه حاصل نخواهد شد این سنت الهیه مثلا فرض کنید آقا سنت الهی اینه شما اگر بخواید عالم رشته فیزیک بشید باید برید دانشکده فیزیک، باید برید پای درس اساتید فیزیک، باید کتابای فیزیکو تعقیق کنید، تو آزمایشگاهی فیزیکم باید برید. حالا اگر یه عده سر راه ما قرار گرفتن، ده سال، 20 سال، 50 سال، صد سال، 500 سال گفتن این حرفا غلطه، نیازی به دانشکده فیزیک نیست و یه عدهم دانشکده فیزیک نرفتن. ما بگیم آقا چون 500 سال این دعوامت مطرح بوده، پس ما دیگه اینو مطرح نمی‌کنیم، دانشکده فیزیک دورش خط بکشید پس هیچ وقت آلم فیزیک فیزیکم نخواهیم داشت اگر بناس به این نتیجه برسیم مشکلات را بشناسیم و حل کنیم شاید البته شاید میگم نزدیک به دقت و یقین با, با یه دلائلی اینکه تحقق هدف انبیا آخریش پیغمبر اسلام تحقق آخرین کتاب الهی عرآن قرار در آخر الزمان صورت بگیرد یک دلیلش اینه که در آخر الزمان به دو جهت هم شناخت هدف درست فراهم می شود. هم آمادگی مردم برای همکاری جهت تحقق هدف انبیا فراهم می شود اون دوتا چیه یک بشر خوش تر میشه رشد یافته تر میشه اندیشمندتر تر میشه با نگرش اندیشمندان تری نگاه میکنه همان گونه که امام سجاد علیه السلام فرمودند چون خداوند میدانست. در آخر و زمان انسانهای زیرک و تیز و هوش و خوشفهمی پیدا خواهند شد سوره توحید رو در قرآن قرار داد آیات اولیه سوره حدید رو در قرآن قرار داد آیات آخر سوره هش رو در قرآن قرار داد یعنی چی؟ یعنی مردم زمان پیغمبر اسلام مخاطب این آیات نبودن مخاطب بودن ولی اون که با گذشت زمان و تعالی اندیشه بشر متوجه این حقایق می شود این در اون تاریخ امکانش شاید نباش این یکی دومین عامل که با شاید ارز کردم بشر سر میخورد. خسته می شود یه زمانی بود من از ایران شروع کنم بعد دنیا چند سال قبل تو همین تهران من و شما بنده خودم با عنوان یک مستمعی که دانشجو بودم با تمام جدیت و علاقه سخنرانان مختلفی که مطرح بودن پای بحثشون می نشستم و گوش میدادم و ضبط میکردم و بررسی میکردم آن چنان اندیشه ها سوق داده شده بود به این سمت که تا ما یک نظام اجتماعی برپا نکنیم به جایی نمیتوانیم برسیم و به حدی افرات در این زمینه داشتن که مرحوم استاد متحری رزوان الله تعالی علیه به عنوان یک متفکر آگاه بحثهایی را مطرح کردند بعدها کتاب شد که بخشش به عنوان کتاب شناخ فرمودن این غلطه که شما دین را فقط در بعد اجتماعی ببینید و لذا این عبارت ایشان این بود میفرمودند نهجل نهج البلاغه یک کتاب است از امیر المؤمنین علیه السلام امیغترین مسائل اجتماعی اسلامی را شما در این نهج البلاغه می بینید. اما در عین حال امیغترین مسائل فردی را اخلاقی را رابطه شخصی خود با خدا را هم در همین نهج البلاغه میبینید و همچنین شما نز صحیفه سجادیه را با عنوان یک کتاب دعا راز و نیاز نیایش سهر باش و گوشه منزلت تنها با خدا شروع کن راز و نیاز کردن یعنی مسائل شخصی و فردی او جش در صحیفه سجادیه است و با عنوان یک کتاب دعا و نیایش و رابطه فردی بین انسان و خدا مطرح شده اما شما عمیق ترین مسائل اجتماعی رو هم در همین صحیفه پیدا میکنید یعنی جامعیت ما در سن خودمون دیدیم یه زمان اوج گرفتن به اون طرف یک زمان اوج گرفتن به این طرف بعدم به جایی رسیدن آقا بالاخره کدوم یکیشه در دنیا همین طوره. یه زمانی بر مبنای خفقان کلیسا و بر خرد قلط کشیشان مذهبی و قشریگری دین در مغرب زمین کار را به جایی رسندن که در عروفا متفکرین آلمان اندیشمندان حکما و فلاسفه فریاد زدن بابا دین و بذارید کنار در کلیساها رو تخته کنید بگذارید ما یک نفس راحتی بکشیم و بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم اما چیزی نگذشت در همین عروفا اندیشمندانی پیدا شدند و فریاد برآوردند، بشر رو از معنویت جدا نکنید دین را از انسانه ها نگیرید اخلاق مرده عاطفه از میان رفته خانواده ها پاشیده شده بشر بر مبنای نگرش اومانیستی فقط شده شکم و شهوت و لذت گرایی آیا قرار بود بشر این شود نه اون نه این پس اعتدالی چیه؟ نسبت به وحی همین افراد و تفرید پیدا شد و بشر رو به این روز رسون یه زمان گفتن فقط جامعه افراد رو کنار گذاشتن حالا میگن افراد جامعه رو بذارید کنار همش غلطه چرا از خود قرآن نگیریم؟ چرا زبان پیغمبر نشنویم؟ چرا زبان معصومین نشنویم؟ چرا تعقل منطقی درست رو در این رابطه مطرح نکنیم لذا میایم سراغ قرآن اول درون دینی آیا وحی ادعا می کند؟ شما میتونید جزء برجسته ها این آیه شریفه که خوشبختانه اینجام نقش بسته و انتمول اعلان مخاطب این انتم کیه؟ من و شمایه پیروه مکتب وحی ولی شرط گذاشته یا بی و انتمال اعلون شرطش چیه؟ امکنتم مؤمنین شما میتونید خیلی عالی بشید خیلی بالا بیاید ولی اگر ایمان داشته باشید همونطوری که دیشب برای شما شروع کردم از آیات سوره مبارکه نور توضیح دادم اوران میگه اگه قرار رستگار بشید اگه قرار اون اهدافی که خدا براتون معین کرده با اون اهداف نائل بشید باید دنبال روح پیغمبران و امر و نحی اونها باشید حالا من چون قول دادم ابتدا درون دینی بحث کنم بعد برون دینی امشب و فردا شبم فکر کنم هنوز بحث درون دینی ما لازمه چون باید کمی بیشتر این بحث جا بیفته تا بعد بریم سراغ بحث بروندینی اجازه میخوام امشب هم از قرآن کریم از دوتا سوره براتون استفاده کنم یک سوره مبارکه احزاب آیات آخری سوره مبارکه احزاب آیه شست آیه شست آیه شست آیه اولی 66 رو می کنم. یه مقدمه مختصری توضیح لازم داره توضیح بدم بعد وارد آیه بشیم یوم تنقلب وجوههم فنار یوم روزی که منظور از این روزی که چیه با توجه به آیات قبل و سیاق آیات قیامت رو میگه یومل قیامت روز قیامت یه گروهی هستن که قبلشم داره بیان میکنه اینا کسانی هستند که کفر ورزیدن و حقیقت رو نپذیرفتن یوم یقلب و وجوه هم دگرگون میشه مفنار در عذابی که اونجا براشون هست دو تا تعبیر هر دو میتونه درست باشه مفسرین هم این دو تعبیر رو کردن تعبیر اول با ظاهر آیام سازگاره وقتی اینا رو تو آتش جهنم میندازن خب آتش جهنم این رنگ چهره ها رو گاهی سرخ میکنه، گاهی سیاه میکنه گاهی مثلا مثل یه گوشت کبابی که رو آتش می‌ذارید، اول رنگش یک تغییر میکنه بعد این دگرگونی هایی ازاب عذاب میبینن. یه معنای دیگری هم که تعویلی باشد منافعاتی هم با معنای اول نداره شما وقتی یه انسانی در یک شرائطی قرار میگیره به شدت ناراحت. به شدت پشیمانه به شدت نادمه ولی زاد دیدید مثلا به یه آدمی برمیخوری میبینین رنگ چهرهش عجیب برگشته سرخ میشه زرد میشه سیاه میشه میگه چه خبره چه میگه دارم میسوزم آقا دارم میسوزم نمیدونی چقدر نادم و پشیمانم اینم میتونه باشه منافاتی با اون اولی هم نداره یه آدمی هی رنگ رنگ میشه هی تغییر چهره میده هی منقلبه هی حالی به حالی چرا حالا چراییشو بعدش میگه من؟ تغلب وجوههم في النار يقولون در واقع اگر ازش می‌پرسی چیته که اینجوری رنگ برنگ می‌شید یقولون میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول ای کاش مطیع خدا شده بودیم و ای کاش مطیع رسول خدا شده بودیم خب این آیه اولو و دارم دقت کنید جانم به فداید یا ابا عبدالله حتی سر وریدشم قرآن خوند سر وریدشم قرآن خوند قبل از اینکه سرشو از بدن جدا کنن اگر وقت باشه حوصله باشه شما آیات قرآنی که امام حسین از حرکتش از مدینه به مکه از مکه به کربلا، چند روزه کربلا، روز آشورا، خطبه صبح روز آشورا، خطبه عصر روز آشورا، امام حسین به این آیات استناد کرده و آیهی هم که سر بریده خونده، اینا رو آدم بحث کنه، ببینید یه دوره معارف هست یا نه؟ خود این امام حسین داره چی رو به ما یاد میده چیاره داره به ما میگه حالا این امام حسینه که اینقدر داره رو قرآن به ما توجه میده و این نامه ایم که من سوژه بحثم قرار دادم به سران بسر نوشته امام علیه السلام میفرماید الا... کتاب الله و سنت نبیه بیه چراخ کتاب بینی قرآن چی میگه بینی کتاب خدا چی میگه پس یکی از طبیینه های امام حسین ما را به سوی قرآن کشندن ببینید قرآن چی میگه حالا اینجا شما وقتی با قرآن اونس پیدا کنید رو قرآن کار کنید با زبان قرآن آشنا بشید ببینید ما الان زبانمون فارسیه زبان مادری هممون فارسیه دیوان حافظم فارسیه ولی بعضی ها حتی دکترای ادبیات فارسی دارن به جرعت میگم ممکنه یک غزل حافظ اول تا آخر قشنگ نتونه چرا؟ چون زبان حافظه باید بفهمه چی میگه حافظ یه رموزی رو در این غزلیات به کار برده یه اصطلاحاتی رو در این غزلیات به کار برده یک کنایات و اشاراتی در این غزلیات به کار برده تا کسی منطق نخونده باشه فلسفه نخونده باشه عرفان نخونده باشه ندونه تعبیرات قرآنی رو آشنا نباشه با فقه و اصول آشنا نباشه اصلا نمیفهمه تو این اشعار حافظ داره چی میگه با زبان حافظ باید آشنا باشه ولی او دکترای ادبیات فارسی است با زبان قرآن باید آشنا باشیم ولی زبان مادری ما عربی باشه شما فسیه ترین و بلیغترین ادیب زبان عرب عشق ما باشید ولی با قرآن انس نداشته باشید با زبان قرآن آشنا نباشید یکی از عزیزان من نقل می‌کردم این اخیراً دکترا می‌خونه در لندن اومده بود اینجا برای یک کاری داش برمی گشت. گفت یک همکلاسی دارم مصریه قرآن حافظه. من یه روزی توی متروی لندن داشتم میرفتم قرآن دستم بود داشتم قرآن میخوندم نگاه کرد گفت که قرآن داری میخونی نگاه دار من از حفظ برات بخونم یعنی من حافظم تو حافظ نیستی گفتم این آیه شما ازش چی میفهمی یه آیه رو من, من چی میدونم من فقط حفظم گفتم خدا نه ما فقط حفظ کنیم بریم البته اینم نقشه بودا بعد اینو عرض میکنم خب حالا این زبان مادریش عربی مصریام است مصریام خیلی فصیح است حافظ کل قرانم است یه آیه رو ازش سوال میکنیم میگه من چی میدونم من فقط حفظ کردم حالا شما وقتی با زبان قرآن آشنا بشید این آیه رو بگذارید کنار این آیه ای که الان بنده میخونم کدوم آیه این آیه ای که خوندم این آیه رو قیامت چه روزیه قرآن خیلی چیزها چیزا را راجب قیامت میگه یوم تقاون هست یوم دین هست یوم طلاق هست یوم چی یوم چی يومو چی یکی از تعبیرهایی که قرآن راجب قیامت به کار برده یوم تبلسرائر روزی است که سریرت ها بر میشه یعنی چی یعنی واقعیت وجود تو اونجا جلوه میکنه بنده تو دنیا ممکنه اینجا پشت تریبون دپای از مکتب عبی عبدالله نشسته باشم چهره یک مذهبی عاشق حسین بگیرم ولی سریرت من یزیدی باشد شما هم متوجه نشید این اختزای دنیاست اما قیامت همه چی برملا میشه واقعیت ها رو میشه یومت تبل بلست سرائره یومت و بلست سرائر دگرگونی چهره ها و اون حالت عمیق رنگ برنگ شدن طبق این آیه قرآن برای چیه؟ یا لیتنا ای کاش الله و اتعن ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم ای کاش خدا رسول خدا را اطاعت کرده بودیم یعنی روزی که حقائق بر ملا می شود دیگه این نیرنگهای دنیایی اونجا وجود ندارد و این گرگ در لباس میش و می در لباس گرگ که اختزای این عالم است اینا کنار می رود انسان از عمق وجودشون این ناله را سر میدن ای کاش جالب جالب بقیه شوالا نگاه کنید آیه بعدی آیه 67 وقالو و بازم میگن چی میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و انا و ازلون سبیلا ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم ای کاش رسول خدا را اطاعت کرده بودیم نکردیم خب چی کار کردیم خب بالاخره ما که اعتواض کردیم ما که یه باید و نباید تو زندگی قبول کردیم ما که یه محدودیت چیه که در این عالم خوب دقت کنید چرز میکنم چیه که در این عالم باید و نباید نداشته باشه ببینید الان فرض کنید بنده یک کسالت جسمی پیدا کرده حالا جسمیه روحی و روانی که خیلی حساس داره بنده کسالت جسمی پیدا کرده پزشک حاضر مطلع دلسوز وارد به من میگه این کار بکن این کارو رو نکن افراد عادی بی اطلاع میگن این کار رو بکن این کار رو نکن عقل چی میگه منطق چی میگه؟ اگر من تحت ترسید یک اموری قرار گرفته باشم به جای اینکه حرف اون پزشک پزشکو گوش کنم حرف اون افرادی که از تبجیزی نمیدونستن گوش کردم بعد از مدتی حالم بس شد مشرفه به موتم به من میگن میگم آخ ای کاش این کارو نکرده بودم ولی دیگه این کاشها سودی ندارد لذا فردای قیامت کسانی که طبق آیه شست و شش سوره مبارکه احزاب هی hey, رنگ برنگ میشن هی hey, منقلب میشن هی hey, به تعبیر من تو سر خودشون میزنن و یقولون یا لیتنا اتعن الله و اتعن رسول ها رو بیان میکنن و قالو و میگن ربنا جالبی که اینجا کلمه ربنا رو به کار برده یعنی خدایی که قرار بود تو ما رو تربیت کنی قرار بود تو کلاس تو ما ثبت نام کنیم مربی ما قرار بود تو باشیم تو بگی چی کار بکنید چی کار نکنید اما انا ما اتعنا سادتنا ساده جمع سید سید آقا او بزرگا اونایی که برای ما آقا بودن برای ما ارزش داشتن برای ما مثلا براشون یه وجهه قائل بودیم در مقابل خدا و کبرا انا رشت فیده های شبیهشو عرض کردم با زبان قرآن آشنا بشیم از قرآن یه شاهد بیارم قرآن مثلا قرآن کریم بتپرستا رو داره سرزنش میکنه میگه که آقا آخه این که با دست خودتون تراشیدید این که مخلوق شماست آخه مخلوق شما میتونه معبود شما باشه شما یه کمی فکر کنید اون قدرت درونیتونو رو به کار ببرید بررسی کنید چی جواب میدادن انا وجدنا آبا انا الاهازا اخه بزرگترای ما ریش ما اونا اینجا خب اونا بودشته کردن منطق چی میگه عقل چی میگه وجدان چی میگه تشخیص درست چی میگه اینجا من اینجور اینا چرا رنگ به رنگ میشن انقدر خودشون رو میخورن میگن ما به جای این که ببینیم خدا چی گفته پیغمبر چی گفته گفتیم بزرگان فلان قوم چی گفتن اینایی که دبدبه و کبکبه دارن فارغ و تحصیل فلان دانشگاه چی گفتن؟ دور دیده های فلان کشور چی گفتن؟ اینا در مقابل خدا چی قارن؟ دور دیده های هر دانشگاه فارغ و تحصیل هر مملکت زمانی حرفشون ارزش داره که یک با عقل تطبیق کند دو یا به عکسش یک دو با وحی تطبیق کنه با دلایلی که عرض خواهم کرد حالا فعلا دروندینی رو دارم بحث میکنم حالا بروندینی که برسم بحث عقلیش و خدمتون ارز خواهم کرد میگه اینا چی میگن و قالو یعنی دارن این حالت ندامتشون در کجا؟ در جایی که یومت ها بلست سرائره حالا در حقیقت ها عجب اینجوری بود؟ عجب اشتباهی کردیم به جایی که ببینیم خدا چی گفته گفتیم فلان آقای ایکس چی گفته به جایی که ببینیم رسول چی گفته تو پرانتز بگم دشمنم بیداره آقا خانم خواهرم، برادران دشمن زرنگه ما از دشمن گله نمی کنیم. دشمن کارش دشمنیه از دوست گله میکنیم که زیرکی نداره آقا انقدر تبلیغ کردن که اگر شما بخواید قرآن بحث کنین میشه بحث ارتجایی میشه بحث امول بودن میشه بحث قدیمی اگر بگید امام صادق علیه السلام چنین فرموده آیا که دیگه که دیگه امروزی ها چی گفتن اینا رو به قطری دامن زدن که ناخداگاه یک استاد قوی درس خونده وقتی میره سر کلاس میگه به خود من میگفت میگفت جرأت نمی کنم اول بگم امام صادق چی فرمود اول میگم فلانی اینجوری گفت فلانی اینجوری گفت اون دانشمند اینجوری گفت بعد میگم امام صادق هم اینو فرمودا اینها چیه اینا موانع تحقق هدف انبیاست یعنی افراد به جای اینکه با عوامل معرفتی درست هدف انبیا آشناتر بشند بشن و راه تحقق رو از زبان اهلش بگیرن هنوز دارن فاصله درست میکنن با عناوین مختلف ولی فعلا عرض کردن بحث در اون دینی ما تو قرآن میگه و قالو ربنا انا تعنا صادتنا و کبرانا ف از سبیلا اینا ما رو بیچاره کردن ما رو به زلالت انداختن ما رو از خدا جدا کردن یه نوبیته جالب دیگری آیه 68 وش ربنا طهم من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا البته اینو در واقع میباس تو دنیا میگفتند ولی خب دیگه اینجا که نشود رفتن اونجا که حالا بیدار شدن فهمیدن سرشون به سنگ خورده میگن ربنا ای خدای ما آتهم عفین من العذاب ما گرفتار شدیم ما دیدیم چه بدبختیم ولی به اینا دو برابر عذاب بده برخی از بزرگان از مفسرین در زیل این آیه میفرمایند منظور از این دو عذاب چیه یه عذاب خب خودشون هم گمراه بودن عذاب دوم مارم گمراه کردن مارم بیچاره کردن آقا تو منحرف بودی بودی دیگه چرا منو به انحراف کشوندی؟ که البته اینجا این جوابم باید داد شما هم چشم داشتید شما هم عقل داشتید شما هم دل داشتید به شما هم تذکر دادن چقدر فریاد زدن بیایید متعال اینجا من گله کنم مستمعین ما مستمعین اهل درک و علم و فکر و بحث و نظر و مناظرن عزیزان من چقدر کتاب خوندید چقدر راجب به دین مطالعه کردید در این زمانی که به اناوین مختلف میخوان باورهای درست را از انسان بگیرند و خواهم گفت چرا و عرض کردم ابتدای عرائزم ضرورت بیشتری دارد که ما این بحثها رو واقعا به چالش بکشیم و بحث کنیم و دق ما باشه. چقدر وقت برای این کار گذاشتید آقا همین یه اده میگن کمال وحی حد دقلیه. فوری من تکرار میکنم یا میرم دنبالش تحقیق میکنم یه اده میگن شما هیچ تلاشی خودتون دیگه راجبه وحی نباید بکنید او فور... وقت اظهار نظر اله ماشاءالله بر چه مبنا؟ چطور بنده راجب فیزیک چیزی نخونده باشم حق اظهار نظر ندارم راجب شیمی چیزی نخونده باشم حق اظهار نظر ندارم راجب مسائل مختلف تخصصی راجب دین بنده با این دوتا گوش هم پای درس مرحوم استاد متحری از خودش شنیدم چون میخواست درس به ما بده میفرمود نه اینکه خدایی کرده منیت بکنه میفرمودند که من اگر درس نبود و شما شاگردان من نبودید نمیگفتم زحمتی که برای فهم اسلام کشیدم اگر تو رشته پزشکی رفته بودم چندین تخصص گرفته بودم زحمتی که برای فهم اسلام کشیدم اگر در رشته پزشکی رفته بودم چندین تخصص گرفته بودم اگه همینجوریه تا کتاب میکنه اظهار نظر میکنه چهار تا مقاله میکنه به نظر من اینه اینام درده یعنی به جایی که وحی رو بشناسه ناشناخته اظهار نظر میکنه حالا انشالله یه نمونه های از این اظهار نظر ها رو در شبهای آینده خواهم براتون خون لذا آیه شریفه چی فرمون؟ اینا خودشون گمراه بودن مارم به گمراهی کشندن خب حالا پس قرآن کریم میگه چی دیشب و این سه ای که الان خوندم به اندازه‌ای که وقت اجازه میده یه آیهی مهم دیگری رو حتما باید امشب بحث کنم اونو دقیق بکنید ببینید به اندازه‌ای که دیشب و امشب با هم بحث کردیم بحث درون دینی فعلا با توجه به قرآن حالا روایت هم بهش اضافه میکنم میگه آقا جان لازمه بحرمندی از وحیه مطیع خدا با رسول شدنه باید ببینید خدا چی گفته؟ بعد ببینی رسول چی گفته اصلا مبنای تسلیم معناش همینه خب اینجا که گفتیم با تسلیم باشیم پس اون نظر اولیه که میگه وحی حد اقلیه، میگم اینو بر مبنای تسلیم وحی میگی تو که وحی رو قبول کردی بر مبنای تسلیم در مقابل مکتب وحی میگی یا بر مبنای سلیقه شخصی میگی اگه بر مبنای سلیقه شخصی میگی که ما جز دسته اول نیستیم که میگیم وحی نه ما که وحی رو قبول کردیم ببینیم وحی این حرفو زده یا نه و اگر جز دسته دومید میگید ما فکری عقلی تدبری اندیشه تلاشی لازم نیست همه کار دین برامون کرده حالا این آیهی که الان براتون بحث میکنم دو دسته رو رد میکنیم. میگه نه اونه نه این باید تسلیم باشید ولی با یک دخالتی هم از درون خودتون ولی نه دخالت خلاف اطاعت رسول خدا اون چیه؟ در آیه شریفه سی پنج سوره مبارکه یونس امیدوارم وقت اجازه بده یه نظر از دانشمندان قدیمی مرحوم علامه هلی یه نظر از مفسرین معاصر مرحوم علامه تبا, تبا و دو تا یا سه تا روایت هم از سه معصوم در زید این آیه ولی سری رد بشم قرآن کریم در آیه شریفه سی و پنج سوره مبارکه یونس میفرماید قول بگو حل من شرکائکم من یهدی الحق قول الله یهدی للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون عجب آیه حساس و ظریفی در این رابطه است قل بگو خب اینکه بگو اولا داره میگه من الان دارم یه خوراکی رو به عنوان خوراک وحی به شما میدم اما از شما میخوام که روش حکم کنید پس شما هم نقش دارید یعنی اگه شما قدرت حکم کردنتون را درست به کار نبرید و بناس حکم درست بکنید حکم درست نکنید اون نتیجه ای که وحی میخواد برای شما حاصل نمیشه خب اون چیه؟ قول حل من شرکا اینایی که شما به عنوان شریکان گرفتید مثل این آیه قبلی خوندم شاهد گفتم با زبان قرآن آشنا بشیم. از اونجای قرآن وام بگیرم از آخر سوره احزاب آیه 66، 67، 68 گفت چی؟ گفت ما خدا رو گوش نکردیم، پیغمبر رو گوش نکردیم، اما سراغ اینایی که علب و طلب داشتن رفتیم، سادتنا، سراغ اینایی که عناوین داشتن رفتیم کبرا اینا ریش سپیدای قوم و پیرمردهای قوم و بزرگترا آ اینا اینجوری میگن دیگه اینجوری گول اینا رو خوردیم حالا اینجا میگه بگو اینایی که شما شریک گرفتید به کمک گرفتید و از اینا قرار شد راه بگیرید من یهدی الالحق آیا هستن که بتونن شما رو به حق هدایت کنن قول الله یهدیل الحق اما تو بگو بعدش بیگون نه اون خداست که داره هدایت و حق میکنه اما باز دوباره نه اینکه شما تقلیدی کرکورانه باشه ما مسلمون مقلد کرکورانه دردی رو درمان نمیکنه چه زیبا گفتن برخی از بزرگان این ضربال مسئله که نمونه شاخصش رو در این رابطی ای که الان بنده میخوام عرض کنم تو کلیل و دمنه زیاد میبینید چقدر زیباست میگه یه گله بز رو توی کوچه باریکی عبور بدید داران رد میشه یه چوبی اون وسط بذارید که بزا از زیر نتونن ردشن. شن اول از رو چوب میپره بز دوام میپره بز سوام میپره چوبو بکش تا آخر گله بزا همه اونجا میرسن میپره میگن این بوز صفتی است. ولی ما آدمیم. قرار نیست چون دیگران پریدن ما بپریم. قرار نیست چون دیگران پذیرفتن ما بپذیریم. بنا نیست چون دیگران این گونه گفتن ما این گونه بکنیم. لذا ببینید آیه چی میگه؟ افمن یهدی الالحقه احق و ایتبه امن ام لا یهدی الا ان يهدا، فما لکم کیف تحكمون؟ شما رو چی شده چرا عقل ها را به کار نمی چرا نمی عدیشید که اگر بناست تویی که میگی الله اکبر هدایت را الله اکبر بگیری یا از سادتنا و کبرانا چون دب دب و کب, کب دارد بررسی کن مگر وحی آجز از شما را هدایت کند شما به اندازه ای که یکی از دوستان دانشگاهی خود من سن سال ماها دیگه موها سفید شد و خسته شدیم و سرازیر شدیم گفت فلانی به خدا قسم به این نتیجه رسیدم این مقداری که گوش به اکسگر دادم اگه به خدا داده بودم و من خیلی بهتر از این بود گفتم خوشا به حالت که فهمیدی دعاکن مام بفرم اون مقدار که گوش به حرف اکسگر دادم اگر گوش به حرف خدا داده بودم حالا تو زندگی شخصیمون بعد میرییم تو زندگی اجتماعیمونم هم این اینقدر مادر زندگیش آقا برای تربیت اولاد ایکس و ای چی گفته چقدر خوندیم قرآن چی گفته چقدر خوندیم امام صادق چی گفته که البته با این نگریشی کرد کده میگه تو به کار بنداز تو به کار بنداز نگاه کن اینجا اجازه بدید من یه عبارتی رو از مرحوم علامه هلی اول براتون بخونن دوم از مرحوم علامه تبا تبایی خب علامه هلی میدونید رجولیست. رجولیست اللامه هلی در دنیای تشعیو دیگه هرچی از عظمتش بگیم کم گفتیم کتابی داره به نام الالفین دو هزار دو هزار دلیل آورده که چرا باید بعد از پیغمبر ما دنبال روی امام معصوم باشیم اون کسی که خدا برگزیده مطیع او باشیم صفحه 65 و 66 میگه که این آیه 35 سوره مبارک یونوس که میگه او من یهدی الال حق احق و انیتبه امن لا یهدی الا یهدا یهدی رو متعدی میگیره مجمل میگم دوستانی که با این زبابت و قوابت آشنان متوجهند زیادم وقت ندارم باز کنم اینو متعدی میگیره میگه اگر متعدی باشه هشورده ی معناش چی میشه کسانی که هدایت کردن ذاتی شونه کسانی که هدایت کردن ذاتیشون شون نیست باید از یکی دیگه بگیرن لا یهدی الا یهدا. نمیتونه هدایت کنه مگر اینکه خودش هدایت بشه پس یکی باید اول دست او رو بگیره تا او بعد بتونه دست دیگری بگیره میگه اگر کسی بود که هدایت ذاتیشه اصلا ذاتن هادیه او سزاوارتر نیست که او رو هادی قرار بدید میگه خب اونی که هدایت ذاتیشه به هدایت دیگران نداره هدایتش میشه هدایت ذاتی ذات و بلاستقلال کیه خدا غیر از خدا همه نیازمند به هدایت الهیه خب اگر خدا حادیه به ذاته حالا کسانی که این خدا به اونها این هدایت رو افاظه کرده لذا در اونها هدایت ذاتی میشه افاظهی الهی الله من در بروندینی دیدگاه فارابی دیدگاه کندی دیدگاه ابن سینا دیدگاه ملا صدرارو در آراء مدینه فاضله ارز خواهم کرد که اونا به این نکته رسیدن میگن تا در رأس امور فردی که افاظه الهی به او بشه قرار نگیره و مردم متیعونش هم جامعه ایدئال نخواهد شد و استدلال فلسفی میکنن حالا خواهم ارز کرد انشاءالله در جای خودش میگه این علامه حلی 800 سال قبل در کتاب الالفین اینو میگه مرحوم علامه تباتبایی در المیزان جلد دو صفحه 186 یهدی رو لازم میگیره متعدی نمیگیره میگه لازمم بگیریم یهدی و این تش تقدیر ادغام به دال شده یهدی شده باز این معنا رو میرسونه اشکالی در اون نیست به این معنی میشه تا کسی او رو هدایت نکنید نمیتونه دیگری رو هدایت کنه پس معنا همون میشه تا یک انسانی هدایت ذاتی نداشته باشه احتیاج به هدایت دیگران داره ما این بحثی رو داریم میگیم که آقا نابینا نمیتونه اصاکش نابینا یه دیگر شود بینا باید اصاکش نابینا بشه خفته را خفته کی کند بیدار اگر کسی خودش نیازمنده به هدایته این که نمیتونه دیگری ببینید یه بحث عقلی منطقی و قرآن میگه کیفت تح... شما چگونه حکم میکنید؟ شما چی فکر میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی ما را به تعقل دعوت میکنه اون دسته دوم که گفتن وحی همه کار کرده ما تعقل احتیاج نداریم این آیه اونا رو میکبه میگه کن، ببین و ارتباط عقل و وحی اینجا مطرح میشه عقل تو برای فهم وحی به کار ببر تا بیشتر وحی رو ایمان بهش بیاری وقت به وحی بشی دسته اول هم که میگن حد اینجا فقط اجمالا میگم آقا این هدایت اگر هدایت هادیه به حقه هدایت هادیه به حق حد اقلیه ولی هدایت منی که نیازمند به هدایت دیگرم میشه حد اکثری یا اینجا من ممکن اشتباه کنم چرا من هدایت حادیه به حق رو نپذیرم حالا اجازه بدید از زبان روایتم بگم معصومین علیه السلام چی فرمودن در کتاب اتبیان فی تفسیر القرآن جلد دوم صفحه 184-185 مرحوم شیخ توسی از قول امام صادق علیه السلام نقل میکنه. میگه زمان خلیفه اول بود. یه مسلمانی رو به جرم مشروب خاری گرفتن. آوردن پیش خلیفه. آقای مشروب خورده. گفت حد بزنید. آقا من تازه مسلمان شدم؟ حرمت شراب رو نمیدونستم. کسی هم آیاتی که در قرآن کریم راجع به حرمت شراب باشه برای من تلاوت نکرده بود. یه اصطلاحی هم داریم در علوم اسلامی قبه بلا بیان اگر یک امری بیان نشده باشه شما بخواید اغاب کنید این چیه قویهه طرف نمیدونسته. خلیفه اول. به دومی گفت که به نظر شما چیکار کنیم این داره فرار میکنه زرنگی میکنه یا راست میگه قرمه چه میدونم گفت اینجا جایی است که باید از علی بن ابی طالب سوال کرد او که میتونه ما رو راهنمایی کنه رفتن سراغ امیرالمومنین یا علی چیکار کنیم فرمود برید تو قبیلش از افراد قبیله دوستانشون معاشرینشون از چند نفر تحقیق کنید آقا کسی بوده که برای ایشون آیه حرمت شرب خم رو بخونه یا نه رفتن اومدن گفتن گفتن نه ما براش نگفتیم حضرت فرمود آزادش کنید سلمان میگه این مؤمن راستین متیحق نخواد معرفت شو بالا ببره سلمان میگه به امیر المؤمنین کردم که آقا این قضیه چی بود شما اینجوری برخورد کردید فرمود میخوام حجت خدا رو بر اونها تمام کنم که بفهمند افمن یهدی الى الحق احق أن یتبه اممن لا یحدی إلا أن یهدا فما کیف تحكمون یعنی چی یعنی آقا ما اینو بذارید کنار اون آیه شریفه در سوره انبیاء وجعلناهم ائمة یهدون به امرنا. و اوهینا الیهم فعل خیرات یعنی هدایت کرده اونها بر مبنای افاضه ماست که به اونا میگیم یعنی اینا متصله به حادیه به لذا خودشون هم یه درجه ای از اون حادیه به ذات پیدا کردن تو پرانتز بگم آقا اینجا آتش روشنه بنده یه مقداری به آتش نزدیک میشم بدن من گرم میشه یا نه نزدیکتر میشم شما حتی دست به بدن من میزنی این از آتش چیزی به بدن من سرایت کرده حالا که توی آتش رفتم منم میشم آتش قرب خدا ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون چه عملی عبادت است قصد قرب باشه قرب به معنی به خدا نزدیک بشن جلوی خدایی پیدا کنن امام حسین جلوه خدا نیست اشتباه نشه ها علی ین بشرون کیفه بشر ربهو فی حجج و زهر یعنی همون گونه که شما با آتش نزدیک میشید، خودتون شعله برمیشید به خدا نزدیک بشید، صفات خدایی پیدا کنید اینا به گونهی به خدا نزدیک شدن، شدن حادیه به ذات وقت امیر المومنی میخواستم اینو نشون بدم شما میخواید مردم رو هدایت کنی؟ ببینید خدا کی قرار داده؟ امام رضا علیه السلام این همین مجلس معموم به کار بردن؟ حالا اجازه بدید، المیزان جلد دو صفحه 186، مرحوم علامه تبا تبایی زیل این آیه بعد از این که این بحثارو رو میکنن از قول امام باغر علیه السلام این روایت رو نقل میکنن از امام باقر فرسیدن این آیه چی میخواد بگه امام باقر فرمودن من یهدی الالحق پیامبر و اهل بیتن من لا یهدی الا یهدا بقیین یعنی اگر کسی رو خدا قرار داده خب چرا ما نریم رو اینا تحقیق نه آقا یه رو نزنید قدیمی شده کهنه شده حرف روز بزن خب چه حرف روزی از این حرف روزتر آقا بشریت گرفتاره کجای عالم میرید که بشر واقعا یه زندگی ایدئال داشته باشه خب الحمدلله من اکثر جای دنیا رو رفتم از نزدیکم آشنا بودم تو عمیق‌ترین مراکز علمی کره زمینم رفتم و بحثم کردم و آشنام بودم و دیدم همه گرفتارن. اونی که وضع اقتصادیش توپه گرفتاره، اونی که وضع اقتصادیش بده گرفتاره، اونی که اسلحه فراوان داره گرفتاره، اونی که فقیر معادن زیرزمینی نداره گرفتاره بشریت گرفتار است. چرا؟ چون متکی به غیر خدا شده. و تا زمانیم که بشر متکی به غیر خدا باشه همین است و همین است و همین است. بیایم راه خدا رو را بشناسیم این همه پیغمبر اومد این همه انبیار خون دل خوردن چی گفتن یه مقدار بریم سرِ که اونم تازه آقا ما دهه محرم که میشه که خیلی از دین میگیم آقا اینقدر شله زرد پختم پخش کردم که ببین دستام همه تابله زده همین دست درد نکنه ولی امام حسین احتیاج نداره شما شل زرد بزا بگم یه دل سوخته ای خداییش بیامرزه چندین سال قبل روز آشورات تو این تهران به یکی از دوستان من زنگ زده بود فلانی بیا بیا بیا بیا دارم منفجر میشم و چی؟ گفت امروز چقدر در تهران در اثر این قضاهایی که پختن و خوردن چای ها بالا اومد ولی چقدر فکرها را بالا بردیم مکتب امام حسین نیازمنده به معرفت درست داره معرفت در دینی قرآنی خدا اولیای الهی حادیان به ذات بریم در خانه و از اینها کمک بجوییم ادامه این بحث رو به یاری خدا فرد شد ولی تازه ببینید چجوری عمل کرد فردا روز دوم محرمه همتون شنیده اید که کاروان ابی عبدالله مثل فردایی وارد کربلا شده من از مقتل یکی از شیعه یکی از سنی براتون راجب برودشی دو سه خط میخونم بعد ببینید تو چندین سایت جب اونا بزرگترا خاهرها برادرا دست نیاز دراز میکنم شما رو به خدا دلتون برای قرآن بسوزه شما رو به خدا دلتون برای امام حسین و امام زمان بسوزه یه کمی کار کنید راجب همین حالا براتون میگم من میتونم پونسد جای مختلف تو سایت های مختلف راجب این قضیه کلام میخوام بخونم چه اشکالات سطحی کودکانه مطرح کردند و با همین اشکال سطحی کودکانه چقدر رو فریفتن چرا؟ چون من و شما شل زرد میپذیم پخش کنیم ولی وقت نمیذاریم دین رو بفهمیم چون ما حاضریم روز آشورا من تا زنجیر من افتخار میکنم سینه بزنم اشتباه نشو. من روز آشورا زنجیر میزنم واسو بذار کنار آقا و یه اشگاهی اینجوری میکنه سوس میشی فردا نه مجلس عروسی خداییه نه مجلس ولیمت خداییه نه رفتار اجتماعی خداییه اما روز آشورا محکم به خودت بکوب امام حسین مؤمن راستین مطیع خدا و پیغمبر و قران میخواست تا نشیم همین گرفتاری ها برای ما خواهد ثم ان الحسين قام وركب امام حسين پا شد سوار شد و ساره كلما اراد المسير يمنعونه تاراتا و ی سایر رو نه و اخرى همینجور که میخواست حرکت کنه این بربره میمدن جلوو می گرفتن. این بر بره می اومدن جلوو می گرفتن کارربی که باهر اومده بود سر راه حضرت رو گرفته بود حضرت فرمودند نه من باید ادامه بدم اینجا باایی نمیم ولی همینجور که میومد این ور را می گرفتن حتی بلغ کربلا تا رسید به کربلا. و کان از فی یوم وثانی من المحرم و این روز دوم از محرم بود. فَلَمَّا وصلها قاله وقتی رسید به اونجا فرمود حاذه الْعَرْزِ اسم اینجا چیه؟ فقیل کربلا گفته شد اینجا رو میگن کربلا فقال انزلو پیادشت هاخنا والله محد و رکابنا و صفخ دمائنا هاخنا والله و الله هاهونا والله مخت و قبورنا و هاهونا والله ثبی حریمنا به هازا حدسنی جدی اینجاست که قرار ماها همه به زمین بیفتیم اینجاست که قرار خون ماها ریخته بشه اینجاست که قرار قبور ما برپا بشه اینجاست که قرار حریم ما به اسارت بره اینا همه رو جدم به من خبر داده است این از کتاب شیه، از اهل سنت هم براتون بخونم فقال الحسین و علیه السلام لأصحابه، انزلو، فرود بیاید هازا موضع و کربن و بلا، اینجا سرزمین گرفتاری ها و ابتلاعاته، ها هنا مناخ و رکابنا. و محت و رحالنا و سفک و دمائنا. مثل همون عبارت اینجاست که قرار ما به زمین بیفتیم و خونهای ما ریخته بشه قال فن نزل الغام و حتی لأسغال ناهیتا من الفرات و زربت خیمت الحسین لأحله و بنیه و زرب عشیرته و هم من حول خیمتهی اینجا خیمه عبی عبدالله و بیت و وسط زدن خیمه اصحاب و دورور این خیمه ها زدن اشکال و مطرح کنم بعد ارز ادبی نسبت به فردای عبی عبدالله داشته باشیم اشکال تو چندین سایت دامن زدن انقدر منور دادن شما شیعیان میگویید امامان علم غیب دارند. شما شیعیان میگویید امام حسین از قبل میدانست. شما شیعیان میگویید امیرالمؤمنین فرمود سرزمین کربلا چنین و چنانه پس چطور امام حسین اسم این سرزمین و بلد نبود وقتی وارد شد سوال کرد مسمو حاضر است اسم اینجا چیه با همین اشکال آقا من تو مویدای علمی و دانشگاهی دارم کار میکنم قادر جوان دانشجو به من مراجعه کرده آقا این ما رو سس کرده گفتم عجب یعنی اینقدر ضعیفید بسیار جواب ساده داره اینو بگم برم جلو آقا اولا وقتی امام حسین هر جلو شو گرفت و حضرت فرمودن که من با ابن زیاد بیعت نمی کنم نفرمود که من حرکتم رو ادامه میدم. چرا به کربلا رسید فرمود دیگه نمیرم؟ پس معلومه معلوم بوده قراره تو این سرزمین باشه. اما این سوال، مگه ما استفهام انکاری نداریم؟ حضرت این سوال واقعا دلیلش بر اینه که بلد نبودن؟ یا اینکه که میخواد مطرح بکنه؟ همه بدانید ما از قبل یه قضیه ای در رابطه با کربلا داشتیم و حالا میخواییم اون را علنی کنیم. این نمیتونه باشه؟ سوم. به اندازه ظرفیت اون مردم نشون بده که ما اگر یه همچون مأموریتی داریم میخواییم تو جایگاه خاص خودمون قرار بگیریم پس این اشکال است و چهارم آیا اون اطلاعات ماوراء مادی طبیعی را در همه شئون زندگیشون باید به کار ببرند یا در ظواهر امر باید با بقیه هماهنگ کنن خب اگر اینو دیدید هم ببینید چرا فرمود جد من به من خبر داده همین که اینم داره بیان میکنه چرا قضیه که حالا در شبهایی دیگه براتون خواهم گفت که جبرائیل به ام سلمه گفت ام سلمه به پیغمبر گفت پیغمبر موقعی خداحافظی از مکه به ام سلمه گفت اینا رو خیلی ساده است تو منابع ولی چه بکنیم که وقتی توجه نباشه به هر حال فردا وارد سرزمین کربلا شدند. امام حسین فرمود اینجا سرزمین کربلا است اینجا است که قرار خونهای ما ریخته بشه اینجا جاییست که قرار ما به وظائف خودمون عمل کنیم پیاده شید از عصبها پیاده شدن حضرت فرمود خیمه ها رو بزنید خیمه اهل بیت و وسط زدن جوانان بنی هاشم خیمه هاشو زدند زدن اصحاب خیمه ها رو دورشون زدن حالا با زبان زوغ عرض میکنم. قرار زینب از اسب پیاده شده عباس می دوه زانوش رو می بالا. قاسم میدوه زیر بغل رو میگیره آن میدوه جعفر میدوه برادرها اطرافشو گرفتن برادرزاده ها اطرافشونو گرفتن با تجلیل و احترام زینبو از مرکب پیاده میکنن این ناموس دهره این دختر علی و زهراس این نوه پیامبره این قرار پیامرسان کربلا باشه اما یک صحنه دیگم کربلا براتون بگم اصر یازده بود تنها مرد امام سجاده دستاشو با قل و زنجیر بستن بالای شطور زینب هم احساس تکلیف میکنه باید برادرزاده رو کمک کنه ای بچه ها رو سوار کرد حالا نوبت سواری زینب شده یه نگاهی به گودال قتل نگاه کرد یه نگاهی به الغمه انداخت حسن جان عباسم اسارت زینب آغاز شد آیا یکی از شما نیستید زیر بغل زینب را بگیرید صلی الله علیه یا مولای یا باب زل الله وعلى الارواح التي قلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين